فصل پنجم. بعد از تصادف یادم میآید توی می مانگاه بود که از خواب پریدم و نمیدانستم کجایم. دنبال دکمه چراغ خواب میکشم. آن وقت در نور زننده چراغ دیوارهای سفید و دریچه شیشه ای را دیدم. سعی کردم دوباره بخوابم ولی خوابم سبک و آشفته بود. تمام شب مردم پشت دیوار اتاقها حرف میزدند. اسمی مدام تکرار میشد و با های مختلف به زبان می‌آمد ژاکلین بوسرشان صبح فهمیدم خواب دیدم فقط اسم ژاکلین بوسرشان واقعی بود چون وقتی مرد روپوش سفید در بیمارستان مرکزی اسممان را پرسید آن را از دهان خودش شنیدم یک شب در فرودگاه اورلیسود منتظر برگشتن دوستانم از مراکش بودم. هواپیما تأخیر داشت. ساعت از ده گذشته بود. سالن بزرگی که درهای پروازهای ورودی بان راه داشتند تقریبا خالی بود. کم کم این احساس عجیب به من دست می داد که در یک جور زمین بی مالک بین دو کشور سرگردانم. ناگهان یکی از آن صداهای زریف ظریف فرودگاه ها به گوشم رسید و از سه بار تکرار کرد، خانوم ژاقین با سرژان جهت سوار شدن به ورودی 624 و فرماید فرمایند. شروع کردم به دویدن توی سالن. نمیدانستم در سی سال گذشته چه اتفاقی برایش افتاده بود، ولی آن سالها دیگر به حساب نمیآدند. تصور میکردم آنجا، هنوز یک در ورودی به رویم باز است مسافرهای معدودی به ورودی 624 مراجعه میکردند جلوی ورودی مردی با انیفرم تیره نگهبانی میداد با صدای خشکی پرسید شما بلید دارین؟ دنبال کسی میکردم الان صداش زدن جکلین با سرشان آخرین مسافرها هم رفته بودند شانه بالا انداخت حتما خیلی وقت سوار شدن آقا دوباره گفتم مطمئنین؟ شکلین با سرشان را هم خودتون که میبینین کسی اینجا نیست آقا